وصل سوام، سیاست مساوات چیست؟ آزادی چیست؟ آیا اینها قایاتی ارزندند؟ از چه راه میتوان به آنها رسید؟ برای محدود سازی آزادی قانون شکنان از جانب حکومت چه توجیهی میتوان به دست داد؟ آیا عوضا و احوالی هست که در آن لازم باشد قانون را زیر پا گذارید؟ اینها به نزد همگان، سوالات مهمی است. فلاسفه سیاست جهتها ورزیدهاند تا این سوالات را وضوح ببخشند و جوابهایی برایشان دست و پا کنند. فلسفه سیاست موضوعی فراخ‌دامن است که با اخلاق، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ اندیشه ها تداخل دارد. فلسفه سیاست معمولا در واکنش به اوضاع سیاسی که در آن روزگار میگذرانند، دست به قلم میبرند در این عرصه بیش از قالب جاهای دیگر شناخت محیط تاریخی برای فهم استدلالهای فیلسوف اهمیت دارند پیداست که در این کتاب مختصر مجال سحن پردازی تاریخی نداریم در این فصل مفاهیم سیاسی بنیادین مساوات دموکراسی آزادی مجازات و نافرمانی مدنی را در کانون توجه خود قرار میدهم و آن مسائل فلسفی را که برنگ این مفاهیم است بررسی می کنم. مساوات مساوات را غالباً به عنوان قایتی سیاسی می آرمانی که ارزش دارد به صورت مراد و مقصود آدمی نراید. آنهایی را که سنگ شکلی از مساوات را به سینه می زنند، مساوات طلب می انگیزه نیل به این مساوات، معمولاً انگیزه اخلاقی است. ممکن است این اعتقاد مسیحایی که همه ما در پیشگاه خداوند برابریم، اعتقاد کانتی به اقلانی بودن قائل شدن کرامت یکسان برای همه انسان ها، یا شاید اعتقادی سود نگرانه دایر بر اینکه سلوک مساواد نگرانه با افراد بهترین راه برای رساندن سعادت به حد اعلاست، مبنایان انگیزه قرار گیرد. مساواد طلبان قائلن به اینکه، حکومت‌ها باید احتمام خود را بر سر این کار بگذارند که از تصدیق مساوات اخلاقی به جانب فراهم کردن نوعی مساوات در زندگی اتباعشان قدم بردارند. ولی مساوات را باید به چه معنایی بگیریم؟ پیداست که هرگز امکان ندارد که انسانها از هر لحاظ مساوی باشند. افراد از جهت هوش، زیبایی، توانایی جسمانی، قد و قامت، رنگ مو، محل تولد، سلیقه لباس پوشیدن و بسیاری جهات دیگر با هم فرق دارند خنددار است که بگوییم افراد باید مطلقاً از هر لحاظ مساوی باشند همگونی تام و تمام گیرایی چندانی ندارد مساوات طلبان نمی توانند جهانی را توصیه کنند که ساکنانش جاندارانی باشند شبیه سازی شده با این حال برغم اینکه تعبیر مساوات به صورت همگونی تام و تمام آشکارا مضحک و خلاف است شماری از مخالفان مساوات طلبی پای خود را در یک کفش می کنند که آن را به این صورت نشان دهند این کار نمونه است از ساختن آدمکی پوشالی یا ببری کاغذی ایجاد هدفی آسان صرفم به این منظور که آن را سرنگون کنند آنها با اشاره به وجوه مهم تفاوت در میان افراد یا با گفتن این که حتی اگر بتوان به همگونی تقریبی دست پیدا کرد افراد بیدرنگ به وضعی مانند وضع سابق خیش رجعت می‌کنند به خیال خودشان بطلان مساوات طلبی را به ثبوت رسانده‌اند ولی چنین حمله ای تنها بر کاریکاتوری از نظریه مساوات طلبی فات می شود و به قالب اشکال مساوات طلبی آسیبی نمی رسند. پس مساوات همواره مساوات از برخی جهات است ناز هر جهت بدین قرار وقتی کسی خودش را مساوات طلب میخواند، مهم است که ببینیم منظور او از مساوات چیست به تعبیر دیگر واژه مساوات هنگامی که در سیاقی سیاسی استعمال می‌شود کم و بیش بی‌معنا مگر اینکه توضیح داده شود چه چیز است که باید به شکلی که قرین مساوات بیشتری باشد تقسیم شود و این کار به دست چه کسی یا کسانی باید صورت بگیرد؟ پول، دسترسی به شغل و قدرت سیاسی تعدادی از چیزهایی است که مساوات طلبان غالباً می‌گویند باید به طرز مساوی تقسیم شود یا به طرزی که قرین مساوات بیشتری باشد. درست است که سلیقه‌های افراد به شکل چشمی متفاوت است. ولی این چیزها جملگی میتوانند در فراهم کردن آن قسم زندگی که ارزش زیستن دارد و دلپذیر است نقش مهمی داشته باشند. تقسیم این چیزهای نیکو یا امکانات به طرزی که قرین مساوات بیشتری باشد، راهی برای اعطای کرامتی یکسان به همه انسان است. تقسیم پول به طور مساوی هواداران افراتی مساواد طلبی چه بسا از این موزه دفاع کنند که پول را باید به ترزی مساوی میان همه انسانهای بالغ تقسیم کرد، به طوری که درآمد همگان دقیقاً به یک اندازه باشد. پول در بیشتر جوامع به نزد افراد لازمه زندگی است. اگر پول نداشته باشند، نمی توانند خوراکی برای خود فراهم کنند، نه سرپناهی و نه پوشاکی. شاید بتوان تقسیم مجدد را مثلا به دلایلی سودنگرانه به عنوان محتمل ترین را برای به حد اکثر رساندن سعادت و به حداقل رساندن درد و رنج توجیه کرد. نقد تقسیم پول به طور مساوی رؤیایی و ناپایدار کمابیش واضح است که تقسیم مساوی پول قایتی است ناشدنی. مشکلات عملی این کار در محدوده یک شهر بی است. تقسیم مساوی پول در بین همه افراد بالغ از حیث سازماندهی به کابوسی شباهت دارد. بنابراین، واقع نگر که باشیم، می بینیم که حداکثر اکثر چیزی که این قسم مساواد طلبی می به آن امید ببندد، تقسیم نسبتاً مساوی پول چه بسا از طریق تعین دست مزدی مشخص برای همه افراد بالغ است. ولی حتی اگر می توانستیم به تقسیم مساوی ثروت بسیار نزدیک شویم این وضع اندک زمانی بیش دوام نمیآورد افراد مختلف پول خود را به شکل مختلفی خرج می کنند هوشمندان، نیرنگبازان و زورمندان به سرعت ثروت ضعیفان ابلهان و جاهلان را به چنگ می آورند برخی پول خود را بر باد می دهند برخی دیگر پولشان را پسنداز می کنند. بعضی ممکن است به محض اینکه پول به آنها برسد آن را در قمار ببازند. بعضی دیگر ممکن است دزدی کنند تا سهم خود را افزایش دهند. یگان راه برای آنکه امور به وضعیت تقسیم مساوی ثروت شبیه بماند، مداخلی قاهران از بالاست. بدون شک این کار مستلزم دخالت و مزاحمت در زندگی افراد است و آزادی عمل آنها را محدود می کند. افراد مختلف استحقاق مبالغ مختلف را دارند. ایراد دیگری که نسبت به هر گونه احتمام در راه تحقق بخشیدن به تقسیم مساوی پول مطرح شده، این است که افراد مختلف در قبال مشاغلی که دارند و نقشی که در جامعه ایفا می کنند مستحق دستمزدهای متفاوتی هستند. بدین قرار، مثلا گاهی دامی شود که مدیران ثروتمند صنایع استحقاق دستمزدهای کلانی را که به خود میپردازند دارند زیرا نقش و سهمانها در کشور نسبتا بیشتر است آنها برای سایر افراد اشتغال می می‌کنند و رفاه کلی اقتصادی را در کل کشوری که در آن کار می‌کنند فزونی می‌بخشانند حتی اگر آنان استحقاق دستمزدهای بیشتر را نداشته باشند چه بسا پرداخت های بیشتر به عنوان انگیزه برای کارایی بیشتر ضروری باشد که منافع آن به حال جامعه روی هم رفته بر حزینه هایش میچربد. بدون پرداخت این دستمزدها چه بسا منافعی بسیار کمتری آیده همگان شود. در نبود انگیزهی به نام حقوق زیاد، هیچیک از کسانی که از پس آن شغل برمیآیند عهدهدار آن نمیشوند. در اینجا، با اختلاف بنیادینی مواجه میشود. که میان مساواد طلبان و آنهایی که معتقدند نابرابری های عظیم در مال و منال میان افراد امری پذیرفتنی است وجود دارد. باور اساسی قالب مساواد طلبان این است که تنها اختلاف های مختصر در مال و منال میان افراد پذیرفتنی است. و حق این است که اختلاف ها باید منطبق با اختلاف در نیاز باشد. این مطلب اشاره دارد به انتقاد دیگری از اصل تقسیم پول به طور مساوی افراد مختلف نیازهای مختلف دارند بعضی کسان برای زنده ماندن بیش از دیگران به پول احتیاج دارند بسیار بعید از شخصی که تنها در صورتی می تواند زنده بماند که روزانه تحت مراقبت های پزشکی هزینه قرار گیرد در ای که در آن هر فردی مقید شده است به اینکه سهمی مساوی از کل آن جامعه بردارد بیش از چند سباهی زنده بماند البته مگر اینکه جامعه مورد بحث بسیار غنی باشد. روش تقسیمی که بر نیاز افراد مبتنی باشد در قیاس با روش تقسیم مساوی پول در راه نیل به قایت کرامت قائل شدن برای همه انسانها گامی به پیش بر میدارد حق نداریم پول را از نو تقسیم کنیم. شماری از فلاسفه احتجاج کردن که تقسیم مجدد پول هر هم که جذاب به نظر برسد حق افراد را برای حفظ دارایی خیش سلب می کند. و سلب این حق همواره عملی است که از نظر اخلاقی ناسواب است. این فلاسفه ادعا می کنند که حقوق همواره هر ملاحظه دیگری مانند ملاحظات سودنگرانه را از میدان بدر می کند. رابرت نازیک در کتاب خود با نام آنارشی، دولت و آرمان شهر این موضع را اختیار میکند و به تاکید میگوید افراد از این حق اساسی بهره که که داراییهای مشروع خود را نزد خود نگه دارند. مسئله ای که این دسته از فلاسفه با آن مواجهند این است که دقیقاً بگویند این حقوق چیستند و در کجا سرچشمه دارند. مقصود ایشان از حقوق حقوق قانونی نیست. گویین که در جامعه ای عادل این حقوق ممکن است با حقوق قانونی منطبق گردد. حقوق قانونی حقوقی است که حکومت یا مرجعی شایست آنها را ووض می کند حقوق مورد بحث ما حقوق طبیعی است که در حالت مطلوب باید راهنمای وضع قوانین قرار گیرد بعضی از فلاسفه درباره وجود این حقوق طبیعی حرف دارند و باب مناقشه در این خصوص مفتوح است بنتام چونان که مشهور است این تصور را یاوه می میدانست و بر آن خط بطلان می کشی. مدافعان این نظر که دولت حق ندارد ثروت را از نو تقسیم کند، لا باید بتوانند منشأ حقوق طبیعی مفروز در خصوص مالکیت را توضیح دهند. نه اینکه صرفاً مدعی شوند که این حقوق وجود دارد. پیداست که هواداران نظریه حقوق طبیعی از پس این کار بر نیامدند. فرصت برابر در زمینه اشتغال کسیری از مساوات طلبان عقیده دارند که حتی اگر مساوات در تقسیم ثروت امری مقدور نباشد همگان باید فرصت برابر داشته باشند یکی از حیته های مهمی که در آن نابرابری عظیمی در نحوه برخورد وجود دارد حیته اشتغال است برابری فرصت در زمینه اشتغال معنایش این نیست که باید به هر کسی بدون در نظر گرفتن توانایش اجازه داد هر شغلی را که میخواهد اختیار کند. پیداست این رای با عقل نمیخواند که باید به هر کس که میخواهد دندانپزشک دندان پزشک یا جراح شود، اجازه داد به این کار بپردازد و اهمیتی ندارد که چقدر همکاری چشم و دست او نامناسب است. معنای برابری فرصت، وجود فرصت برابر برای همه است که از مهارتها و قابلیتهای مناسب برای کار کردن در شغل مورد نظر برخوردارن. این وضع را همچنان ممکن است صورتی از برخورد نابرابر دانست. زیرا شماری از افراد آن اندازه خوش اقبال بودند که با قابلیت‌های ارسی بیشتری نسبت به سایر افراد چش به جهان باز کرده باشند یا بهتر تربیت شده باشند و بدین قرار در رقابتی ظاهراً برابر در بازار کار دارای امتیازی هستند. با این حال معمولاً از برابری فرصت در زمینه اشتغال تنها به عنوان یک جنبه از جوانبه حرکت به سوی انواع گوناگون برابری‌های بزرگتر نظیر برابری در دسترسی به آموزش دفاع می‌کنند. انگیزه ی طلب برابری فرصت در زمینه اشتغال عمدتا وجود تبعیض نژادی و جنسی فراگیری بوده است که در پاری مشاغل به چشم میخورد. مساواط طلبان دلیل می‌آورند که همه کسانی که واجد صلاحیت های شغلی مناسبند به هنگام کاریابی باید به یکسان مورد توجه قرار گیرند. نباید بر مبنای نژاد یا جنسیت نسبت به کسی تبعیض روا داشت. مگر در آن موارد بسیار نادری که نژاد یا جنسیت را می توان شرط زیربتی برای اشتغال در حرفه مورد نظر دانست. مثلا زنان نمیتوانند دهنده اسپرم باشند. بنابراین کنار گذاشتن متقاضیان مؤنس این شغل اصل برابری فرصت را نقض نمی کنند. برخی از مساواد طلبان حتی به طلب برابری برخورد با متقاضیان کار قناعت نمی کنند و از اینجا هم قدم پیشتر می گذارند. آنها مدلل می دارند که مهم از خود را از شر بی توازنی های موجود در پاری مشاقل نظیر فزونی مردان قاضی بر زنان قاضی را حاساسیم. روش ایشان برای چاره کردن بیتوازنی های موجود به تبعیض وارونه معروف است. تبعیز وارونه تبعیز وارونه به این معناست که عملا افراد متعلق به گروه هایی را که سابقا محروم بودند به کارگماریم. به زبان دیگر آنهایی که راه رسم تبعیض وارونه را در پیش میگیرند آمدانه متقاضیان را به یک چشم نگاه نمی کنند. به این معنی که جانب افرادی را میگیرند که متعلق به گروه هایی هستند که تبعیض معمولا متوجه آنها بوده است. دلیل چنین فرق نهادنی میان افراد این است که میخواهند با این کار به روند مساواتمندانه تر شدن جامعه سرعت ببخشند. آن هم نه فقط با خلاص شدن از شر بی توازنی های موجود در برخی مشاغل بلکه علاوه بر آن از راه فراهم کردن سرمشق هایی برای جوانان متعلق به گروه هایی که سنتاً برخورداریشان کمتر بوده است تا این جوانان از آنها تقلید کنند و ایشان را به دیده احترام بنگرند بنابراین به طور مثال در دانشگاه های انگلستان شمار استادان مرد فلسفه از شمار استادان زن این رشته بیشتر است آن هم به رغم این واقعیت که زنان بسیاری در مختای کارشناسی فلسفه می آنکه آن هوادار تبعیض وارونه است طبعا اظهار می‌دارد به جای آنکه منتظر بمانیم تا این وضعیت رفته رفته دگرگون شود باید به طرز قاطع و سازنده‌ای وارد عمل شویم و به نفع زنان متقاضی استادی دانشگاه تبعیض روا داریم معنای این حرف آن است که اگر مردی و زنی هر دو متقاضی شغل واحدی میشدند و قابلیت‌هایشان کمابیش برابر بود باید زن را انتخاب می‌کردیم ولی قالب هواداران تبعیض وارونه از اینجا هم پیشتر می روند و میگویند حتی اگر آن زن در قیاس با مرد نامزد ضعیفتری از لحاظ قابلیت های شغلی بود باید او را بر مرد ترجیح میدادیم و به کار میگماشتیم. البته به شرط اینکه او از توان انجام دادن وظایف مربوط به آن شغل برخوردار می بودود. تبعیض وارونه تنها تمهیدی است موقتی، که آن را تا وقتی که نسبت اعضای گروهی که سنتاً محروم بوده است، کمابیش منعکس کننده نسبت اعضای این گروه به کل جمعیت نشده است، به کار این تمهید در برخی کشورها غیر قانونی است و در برخی دیگر به حکم قانون لازم الاجرا شده است. نقد تبعیز وارونه تبعیز وارونه خلاف مساواد طلبی است. هدفهای تبعیض وارونه ممکن است مساوات طلبانه باشد ولی برخی احساس میکنند که راه و روشان برای رسیدن به این هدفها به از انصاف و ادالت است. به نزد هواداران پروپاگند مساوات طلبی اصل برابری فرصت در زمینه اشتغال معنایش این است که باید از هرگونه تبعیض به استناد دلایل نامربوط خودداری کرد. تنها چیزی که دلیل میشود، برای اینکه متقاضیان را به یک چشم نگاه نکنیم این است که آنها ویژگی‌های زیربط متفاوتی داشته باشند با این حال توجیه تبعیض وارونه تماما مبتنی بر این فرض است که در بیشتر مشاغل اموری مانند جنسیت ترجیحات جنسیتی یا اصل و نسب نژادی متقاضیان ربط و مناسبتی ندارند. پس به نزد کسی که برابری فرصت را به دیده قبول می‌نگرد تعبیز وارونه هر قدر هم که نتیجه نهایی اش دلکش باشد مسلما به صورت اصلی بنیادی مقبول نمی افتد. هواداران تبعیض وارونه چه بسا در پاسخ بگویند که وضع فعلی در مقایسه با وضعی که در آن تبعیض وارونه به طرز فراگیری تحقق پیدا کرده به حال اعضای گروه‌های محروم بسیار تر است. به عنوان راهی دیگر در مواردی که این قسم سیاست افراطی مناسبت دارد اصل و نسبت نجادی یا جنسیت متقاضیان ممکن است عملا به صورت شرایط لازم زیربتی برای انجام دادن آن شغل درآید بخشی از شغل کسی که بدین نحو انتخاب شده این است که به عنوان سرمشقی عمل کند برای نشان دادن اینکه اعضای این گروه می توانند از پس آن شغل برایند. با این حال جای بحث است که این وضعیت اخیر اصلا موردی از تبعیض وارونه باشد. اگر این ویژگی ها ربط و مناسبت داشته باشند، منظور کردن آنها به هنگام گزینه کارکنان، کنان، حقیقتا صورتی از تبعیض نیست، بلکه منطبق است با آنچه مهمترین خصوصیات لازم برای اشتغال در آن حرفه میدانیم. تبعیض وارونه ممکن است به کین توزی منجر شود. درست است که هدف تبعیض وارونه، ایجاد ای است که در آن توضیع دسترسی به پارهای مشاغل به طرزی مقرون به برابری بیشتر صورت گرفته باشد ولی این تمهید در مقام عمل ممکن است مایه تبعیض بیشتر علیه گروههای محروم شود آنهایی که به دلیل تعلق داشتن به گروهی محروم نمی‌توانند شغلی برای خود دست و پا کنند چه بسا نسبت به کسانی که عمدتا به دلیل جنسیت یا اصل و نسب نژادی خیش صاحب شغلی می شوند، کینه پیدا کنند. این مسئله علال خصوص وقتی پیدا می آید که کارفرمایان کارجویانی را به کار می گمارند که به وضوح فاقد توانایی های لازم برای انجام دادن وظایف خیش به ترزیم مناسبند. این امر نه تنها تثبیت کننده بدترین تبعیض های کارفرمایان و همکارانان هاست، بلکه به این نتیجه هم می انجامد که آن کارجویان سرمشخای بیمایهی برای سایر اعضای گروه خود می شوند. این وضع در بلند مدت چه بسا حرکت عمومی به سوی مساوات در دسترسی به مشاقل را به توقف دارد. همان قایتی که قرار است تبعیض وارونه به آن برسد. با این همه برای این نقد می توان جوابی فراهم کرد و آن اینکه تضمین کنیم سطح کمینه مطلوب توانایی در کارجویی که به موجب تبعیض وارونه صاحب شغلی میشود نسبتا بالا باشد